سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز همراه کانال هزار افزان. امیدوارم که حالتون عادی باشه. از کتابی که مشخصاتش رو گفتم داستانی رو بهتون تقدیم کنم به نام شیپیتارو. در دوران قدیم توی ژاپن رسم بود به محض اینکه پسری بزرگ میشد باید خونه پدری رو ترک می کرد. و توی اون سرزمین دنبال ماجراجویی میرفت. رفت. گاهی اون با مردی جغرل که اونم ماجراجو بود آشنا میشد و بعد هم با هم مبارزه دوستانه می فقط برای اینکه ثابت بشه کدوم قوی تره. اما مواقعی هم پیش می اومد که فرد دشمن دست به قارتگری می زد و باعث ترس و وحشت در نواحی همسایه می شد. بعد مبارزهی جدی در می گرفت. یه روز جوانی از روستای زادگاهش رهسپار سپار شد و ازمش رو جذب کرد تا موقعی که دست به کار بزرگی نزنه، و اسمش بر سر زبونا نیفته به زادگاهش بر نگرده اما اون موقع چندان خبری از ماجرا نبود تا کسی جویاندش باشه پس این جوان زمانی طولانی به جاهای مختلف رفت بی که با قولای خشن یا دوشیزه های پریشان حال روبرو بشه سرانجام در دور دست کوهستانی وحشت انگیز دید که نیمی از آن پوشیده از جنگل انبوه بود اون این منظره رو به فال نیک گرفت و بلافاصله فاصله راهی و که به کوره راه جنگلی میرفت در پیش گرفت. وقتی به اونجا رسید موانع سخت مقابلش قد برفراشتند. صخره های تن که باید از اونا بالا میرفت. رودخله های ژرف که باید از اولا میگذشت و خارزارهاش که نباید به اونا نزدیک میشد. قلبش به شدت میزد. اما اون شجاع بود و چاره ای نداشت جز اینکه با دشواریها ها مثل بسیاری از افراد دست و پنجه نرم کنه. اما با اون که خیلی تلاش کرد نتونست توی دل جنگل راهی باز کنه و می دونست که باید تا شب نشده از جنگل بگذره. همه جا رو به دقت زیر نظر گرفت تا ببینه آیا پناهگاهی پیدا می کنه؟ و ناگهان، توی زمین صاف کوچیکی عبادتکده کوچیکی رو دید. شتابان به اونجا رفت و توی یک گوشه گرم خودشو جمع و جور کرد و زود به خواب رفت. تا چند ساعت از جنگل صدایی به گوش نمیرسید. اما نیمه شب ناگهان هیاهوی به پا خواست که مرد جوان با اینکه بسیار خسته بود، بلا از جا جهید و بیدار شد با احتیاط از میون ستونهای عبادت نگاهی به بیرون انداخت گربه های حراسنگیزی رو دید که خشبگینانه پیچ و تاب میخوردن و با نهره هاشون شبیه حراسناک به وجود برده بودند. ماه کامل بر فراز سحنهی شگفتانگیز میدرخشید و جنگجوی جوون شگفت زده سحنه رو مینگریست. اون از ترس اون که به وجودش پی نبرن کاملا ناروم و بی حرکت بود پس از مدتی متوجه شد که میون نره ها و جیقای گربه ها سخنانی رو میشنوه. به شیپیتا رو نگو این یه رازه به شیپیتا نگو با تمام شدن شب گربه ها ناپدید شدن و جوان تنها موند. اون چه در اطرافش گذشته بود اونو بسیار خسته کرد. پس روی زمین بلو شد و تا طلوع خورشید راحت خوابید. وقتی بیدار شد خیلی گرسنه بود. به فکر فرو رفت که چطور چیزی برای خوردن پیدا کنه. بلند شد و به هر طرف رفت و پیش از اون که خیلی دور بشه بخت یاریش کرد و به راه باریکه ای رسید که اونجا رده انسان دید. دنبال رده رو گرفت و کم کم به کلبه رسید. اون سوی کلبه ها یه روستا قرار داشت. سرحال از یافتش با شتاب اونجا رفت. اما همون لحظه صدای گریه و زاری زنی رو شنید که از مردایی که اونجا بودن میخواست از اون بگذرن، و کمکشکنن با صدای ناله دردناک زن گرسنگی از یادش رفت. پس سعی کرد به درون کلبه بره و بفهمه که چی شده؟ مردایی که اونجا بودن سرشونو تکون دادن و گفتن گرفتار مشکلی بزرگ هستند و کسی نمیتونه به اون دختر کمک کنه. اونا علت تمام اون گرفتاریا رو روح کوهستان میدونستند. و گفتن مجبورن هر سال دوشیزه ای رو براش قربانی کنند. اونا گفتن شب این موجود هراسانگیز به اینجا میاد. ناله که شنیدی فریادای دختری که قرعه به نامش افتاده. پسر جوان پرسید آیا اون موجود برای بردن قربانی خود یه راست به قلبه میاد؟ رستایی پاسخ منفی دادن و گفتن، که خمرهی بزرگ توی عبادتکده‌ای وسط جنگل قرار داره. اونا باید دختر رو دست بسته توی اون خمره بندازن. با شنیدن این سخنان، شور اشتیاق فراوونی برای نجات دوشیزه از چنگال سرنوشت مرگ بارش توی دل جوان به جوش اومد. اشاره به عبادتکده‌ی کوچیک، صحنه شب قبل به یادش شد. اون تمام جزیات ماجرا رو توی ذهنش مرور کرد. شیپیتارو کیه؟ بعد نگهان پرسید. آیا می دونید شیپیتارو کیه؟ اونا گفتن شیپیتارو سگ بزرگ مباشر شاهزاده ماست. محل زندگی مباشر از اینجا خیلی دور نیست. اونا از این سوال خندیدند. چون که به نظرشون خیلی عجیب و بی معنی بود. مرد جوون نخندید. از کلبه دور شد و یه راست سراغ صاحب سگ رفت و از اون تقاضا کرد تا سگو یک شب به اون امانت بده. ارباب شیپیتارو اصلا تمایلی نداشت که سگش رو در اختیار جوونی که نمیشناخت بده. اما سرانجام رضایت داد. مرد جوون سگو برداشت و برد. قول داد که روز بعد سگو برگردونه جوان شتابون به طرف کلبه جایی که دوشیزه اونجا زندگی میکرد رفت و از پدر و مادرش تقاضا کرد که دخترشون توی یه انباری بندازن و در رو محکم ببندن بعد با شیپیتارو به طرف عبادت کرده رفت و سگو توی خمره انداخت شب شد او گوشهی پنهان شد نیمه شب وقتی ماه کامل بر فراز کوهستان می درخشید گربه ها دوباره به اونجا اومدن و مثل قبل گررش کردن و پیچ و تاب خوردن اما این بار یه گربه سیاه و تنومند که ظاهرا پادشاهشون بود وسط اونا بود مرد جوان با دیدنش حد زد که اون همون روح کوهستانه گربه با اشتیاق به اطرافش نگاه کرد و چشماش با دیدن خمره چوبی بزرگ از شادی برق زد. اون شادمانه به هوا پرید و از سر کیف نره های سر سرداد. بعد در پوچ خمره رو برداشت. اما به جای اینکه دندوناشو توی گردن دوشیزه زیبا فرو ببره، دندونای شیپیتارو توی گردن خودش فرو رفت. همون موقع مرد جوان بیروندوی و با شمشیرش سر گربه ی رو به زمین انداخت بقیه گربه ها از تغییر ناگهانی اوزا چنان جا خوردن که سر جاشون خشکشون زد جوان و شیپیتا رو هم به سرشون ریختن و بیش از اینکه بتونن فرار کنن همه رو کشتن با طلوع خورشید مرد جوان سگ و به صاحبش برگردند از اون زمان به بعد دخترای کوهستان امنیت کامل یافتند. روستایی هم هر ساله به یاد جنگچوی جوان و شیپیتارو جشت میگیرن سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب روتخانه ها و برکه های جادویی قصر های باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه اسهایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده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 ادساین مهران دوستی